الله و آله آخرین و اهل الله هم شکر را <جميعا مشهده> از بیانش که بحث راجع به حکیت شکرت که به حسب متعارف کتاب‌های اصولی ما تقریبا وفاقاً الا منهج مفهوم شیخ شمار مواردیت از موارد زنده ماتله. چون آن سر شیخ شخ، تأثیر آن سر که آدم هم وقت جیه زننه، وقت رو استسنا کرده؟ اول وقت زوافر بعد وقت جیه قلب لواغی، آنها چلون نمی‌طلند. بعد وقت جیه که در اسماعیل تازه اشمار محسس شده. بعد هم حجیت اجماع شهرت فتوایی و آخرش هم حجیت خبر واحد این پنجتا رو در کتاب مرکوم شیخ از اصالت عدن حجیت زن خارج شدن چهارمی شهرت فتوایی بود از بعد از مرکوم شیخ بزرگانی که آمادن بسید نایم یه تقسیم بندی اول کردن که شهرت به سه حسم تقسیم میشه پس ما اول شهرت روائی گفتن رو شهرت روائی بحثش در بحث تا و ترجیح یا تا به خاطر این که جوزه مارجه های از تردیم به را شهرادر میان کلمات اصحاب ما کسایی که خائبه به حجیت خبر شدن غالباً با عنوان یک عمر تعبدی تلقی شده به خاطر که در روایت با من امام اول ارجاع داده اول امام نه یعنی امام فرمیدن به اینکه ببینید کدام مشهور به اون عمل بکنه مرجعی در باب تا آرزه شد ارز کردیم که این بحث اصولا خب قبل نبوده در کتب اهل سنت هم حجیت شهرت به این معنا از شهرت تا حدی جز امور اغلادی ذکر شده یعنی اونها تعبدی به خبر مشهور در مقابل خبر شهاز ندارن بکنیم در جز مرجعات آمده توضیحاتش بزرشتی که تکرار بین مل... مل... مل... اصحاب ما هم حرف روات روایت رو در باقه تا تقریبا از قرن از و هم مطرح کردن قبل او ما روایت عمر رو عنوان تعبط در باقه مطرح نکردن و از قرن تقریبا دوم ده دهم به بعد مشهور تقریبا به این رواد عمل کردن بوده اخراسی هم که به این رواد عمل نکردن مثل ماله و مشهور به رو این عمل کردن و لذا که ایچه قاعده به حجیت خبر کدن در تا آن روز شهرت و جزو مرجحات گرفتن البته بسه استاد آقای این رو قبول نکردن به خاطر اینکه که رواید عمر مهنزره به نظر ایشان ضعیفه این دلحاظ سند و به لحاظ دلالت هم بسه محروفیست که متأخرین مطرح کردند. که آیا این رواید مورد شعار در بجتینه یا موردش تمیزل هو جتنالله و جس که دیگه توضیحاتش من آس کردم. بنابراین خوبیم تو که در اینجا در مسواها آمده و ناشون بینیم که این تمیزل هو جتنالله و جس نه تا آرزل هو نه اینکه امام میخواد تا این اون خبر نادر هم هو جته این هم هو این مؤتمر جداس بکن. که ما میخوایم خبر مشهور هو جته اونی که از هم هو نیست این. خلاصه حرف مرموم استاد و از کرده این بحث رو در تاروز انشاءالله متحرس میشین شاید اینجا در اینجا خدا به نظر ما میاد که اصولا این روایت مبارکه رو این راز باید این که این آرمون که تاروز اصیاد کمیزار با جمع الله این نیست اصلا این روایت ناظر به حجیت و خبره اصلا در این روایت طرز حجیت تعبودی نیست فرض عدم خود جیه همی ایست که کلام سید محتضا باشه اونم نیست. این سوال میکنه که دو خبر از شما آمزه چی کار کنیم امام هم راه و اغلایی رو میکنن و خلاصه اون راه و اغلایی اینست که اگر یک خبر رو ده نفر از من نمی کردن یک خبر رو یک نفر خب معلوم پیش و اغلا اون ده نفر درست میکنه یک نفر از ما اشتباهی انجام داده اون قابل قبول نیست اونی که قابل قبوله همونی که ده نفر گفتنی این رو اغلایی. و لذا امام فرانوز به مشته بین اصحابه و ده اشخاص و نادر فعنن مجمع علیه لا غیب فی ظاهرن از کلمه فعنن مجمع علیه لا فی این دور فهمیزه میشه که خبری رو که ادهی نرار کردن این در نزد اغلا قابل قبوله و غیبی درش نیست از سرگی اون زیر بناها و ریز کاری هایی که در این حدیث مبارک وجود داره اینه یعنی اون نکات فنی که در حدیث داره بعد توضیح دیگه مزرز میکنم فعلا تا اینجا اون زیر بنا اینه که این که امامی ها از خود به مشته هره این اصحابه آیا این تعبود شرعی یا ارشاد بگم رو آرادی بنای علمای ما اینه که عادتا اون چی که در کلام اشاره میاد اصل اولی این, این است تحبود شدیست یه... این جزء آجان اینه که اما خود به مشتر و در اشگاه این رو گرفتن به معنای تحبود شدیست این یک. دو فعلا مجمعه تحلیل ظاهرن اون زیر بنا و نقطه این تحلیل به چیه سؤال تحلیلش تحبودیست لاری بفیح لاری بفیح هنی چی؟ یعنی در مقام تحبود لاری بفیح دوشن پس یک تعلیل تعلیل است یا تعلیل اقلالی دو لاری بفیح تحبودیس یا لاری بفیح اقلالی این اختلاف در این هست ما به ذهنمون تمام این ها تحبودیس تحبودی نیست آماریان چون یک دارند دارن که هرچه در کلام امام میاد اصل اولی این که تحبودی باشه نقطه که اینه پس اساس اختلاف بین ما و آماریان این از که خیال کردن فای فینه است لاره هم لاره وفی تحبودی تحبودن ما به میاد که یک امروه قلائی است و امام ارجاء دادن به یک امره اغلایی اصولن اصولن در همین بحثا اخیرا به یک مناسبتی ما متعرض شدیم کلیه یه عدلهی که مثل خبر اقصد آیه نفر مثل آیه نفر علمای اصول سنی و شیعه و یا روایاتی از این بلیل رو برای مبنای حجیت خبر سقه یا خب حجیت خبر هرزمت را که ادن نظر ما میاد که تحبودی نباشه کلن ارجاء به سیره است. پس این راحت بکن توی مجموعه حجیه خبر تعبود خاصی ما نداری. اون چیزی که داریم رجا به سیر و هست. اما راهش تو عقلا شما از هر کسی، حالا یک فرد عادی، یک فرد مثلا مثلا پس سال، یک فرد مثلا مثلا کارگر عادی نمیخواد مثلا دو تا کلام نغمه بشه. یکی رو در نفر نرفتن، یک خب، نفر. خب اونها میون که ده نفر نرفتن درسته اون که باطل یه چیزه خورفید. یعنی یک امر اغلایی و عرفی جای تعبد نیست پس تمام اختلافی که در اینجا مطرقه اصولا این است که این فاق لاله و فی این عم خود و ده اینها رو هم بر تعبد بکنیم یا هم رو بر اغلاییت بکنیم به زند ما هم رو بر چون کلام در مدینه صادر شده شخصی که این کلام رو شده در کوفه است میخواید بین خودش در کوفه بن هنزلن ساکن کوفه هست و بین مدینه به اسطلاح موزیوم پل بزنه رابطه برقرار کنه میخواید این کلامی که از شما در مدینه به کوفه رسیده این چرا متناقضه چرا و که امام هم سامان الله قبول داره که در کوفه کلمات متناقض از امام نقل میشه دو جور نقل میشه او دقف بکنه این لذا دلیگ رو برایت هم داره که وقتی فیض ابن به حضرت میگه من وارد مسجد کفره میشم از بس اخ... اصحاب ما اختلاف دارن و حرف های متفاقه چیزن اکاد عشق و فیدینی هستن فکر من دین رو هم و با بعد حضرت من با رو پیش من حسن یک مطلب من میگهم از اینجا که بیرون میاد ترین میکنن هم کسی برای خودش یه چیزی میگه و کلون یوری در نیاز آره هستند همه دنبال ریاستن این خاطی رئیس بشه اون گویا خودشو پس علاوه این چون یک نکته ولو به حسب ظاهر الان برای شما خیلی واضحه که فهم وجود تعارض در روایات اهل بیت قطعی است و اینکه این مطلب به خود همین رشیدی که در کوفه اینطور هست این هم قطعی است پس عارفين این روایاتی که مسئله تآوز رو مفرق میکنه، دنیای ما همش مؤذن از نه، در جهتش شکی باشه، مگر هم داره به معنی دیگه باشه. ما زمان امام صادقه. در زمان امام, در زمان امام این اختلاف پیدا شد و حضرت هم خبر داشتن. این شما ما در بحث تعارض بگیم مثلا ابن قبه عبارتی داره. این عبارت مفهوم شریفه صادق به مناسبت در کمال دین که در امام زمان اونجا عبارتی ابن غیب اینکه امنی میدونستن ربادشون متعارضه به عجیبه به مهماله مرادیشون از این چه خیلی واقعا یک حرف خادر هوای عجیبیست شبیه یک حرفیشی ظاهره ظاهرشون همون مرادش نبودون همون صاحب جواهر که امنی میدونستن رباد و کر با هم تاروز پیدا خب این انسان عادی میدونه شما اگر یک حج یا به اسطلاح امزی ها پیمانه یا به اسط حجم برای مایعی مثل شیر، مثل آب ببین، و وزنم آب وزنش و حجمش با هم مخالف طبیعی است دیگه. چون شیرها مختلفند دیگه چرب هست، سبوک هست، سنگین است. آوا هم مختلفه. حال اینطوری که یک نواخ باشه. محوتش مختلف مواد که درش هست، جای خاک هست، جای نمک هست، جای عناصر دیگر است. و لذا اصلا من چند بارم عرض کردم تا اونجایی که ما الان سراغ داریم اصولا در تمدن بشری آب همیشه مکیل بوده اصلا موضوع نبوده آب همیشه الان هم مکیله مثل موکه عرب ساب نبونم پیماه یه لیتر لیتر مکیله الان یاده اما این که انسان ندانه ما بین کیل و ما بین وز در آب یا در شیر اخلاف پیدا میشه از مثل ساب جواهر خیلی بعیده که علمه که اگر یک اندازه برای کرد هر حاجی گفتن و یک اندازه‌ای به بحث گفتن این دو تا با هم جایی نمیخوره خب معلومه بدیهی هست نه اینکه حالا دلیل براش حافظ جا چطور شد این کلام به لز ایشان جاری شده احتیاجم هم که ما مقامات علمی عندنا اصفهانمون مطلب بدیهی عرفی هست یعنی موقع دنبال مقامات علمی عندنا مثلا احتمالاً قلمی شده یا احتمالاً مرادش چیز دیگه‌ای بوده خدا رحمتشون رو کتاب یک در مورد صفحه احتیاط کنون های شیعه نبودیه واید عباره جواهد بشه توجیح بشه شعن ایشان عجبه که ما بگیم عیمه نیم دونستم ما بین وزم و ما بین که تناقض و اخلاف پیدا میشه یه همینی زبر هم قدیس شیرشن همینطور آبم همینطور خونم همینطور بولم هم یه چیزه که ماگر قطعا ما بین وزم و ما بین کیشون تا آرز پیدا میشه یه میشه همیشه با هم بخوره ممکن در بعضی از آوازها یک کیلو مثل میشه یک گلیز بعضی بیشتر بشه کمتر بشه این هست و یهبار جایی ابهام داره. اما حالا حالا پس میخوایم اینو بگم این خیال که خیال میکنیم این مس خبر نداشته، این همه یه احساسی مگه برای چیز دیگر باشه تغییر بشه؟ و اصلا ظاهرش اینجا میتونیم بر امام مشرف میکنیم امام را راه اولایی رو راه میاد ولی اما مرهوم عمر نهنذره باز بر میگرده تره سآل میکنه میگه اینطور نیست که شما پرمونه گاهی هم هر دو مشکور هم راست هم میان گاهی هر دو پنی نفر اینجور نفرم پن نفر جوری در اینجا هست در نسخه این روایت م... به اصطلاح به اصطلاح که ما قرار بلند داریم مرجیح مضمونی آمده یا دلالی مثلا من هر کی که مطالعه با کتاب و به اون اصل بکن. این برای ما هنوز روشن نیست که چون میگم اینجا به سوال خیلی پیگیری نکرده یک نوشه خود روایت هم اینجا گیر داره این یکیش گیر داره. یک کنار بذار نمیخوام سوالمون رو باز متفکر بشن. ان شاء در بحث تعارض صابرانه متعرض شو ما مراجعه کنم ببینن. یک کمی گیر داره ولی ما خیلی واضح نیست که امام چرا مساله مطابقت کتاب و سنت رو اینجا اونی که به ذهن ما چون رو یه مفهر کردیم اشکال رو مطابق جواب به ذهن میاد شاید بیم بوده که مثلا امام ببرماند که یک رواید ممکن است با زواهر کتاب بخوره یک رواید ممکن است در زواهر کتاب و سنت نباشه اون یکی برای پن نفر اینم نه هم نفرمون اون یکی رو مثلا مخواستن نگه چون تخریبیه اگر کتاب و سنت نبوده باید از خود ما سوال کنید احتمالا یه چیزی در اینجا کم داره روایت احتمال چون سوال نکرده یعنی طرف نیامده سوال بکنه خود دقت بکنید در این روایت مبارکه اول امام شهرت شده که اون گرفتن مرجع صدوری بعد موافقه کتابه سنت میگه که اون گرفتن مرجع مضمونی بعد مطابقت در عدم با اهل سنت رو میگه که آن گفتن مرجیح جهتی بذار تنمید؟ در رواهت اینجوری آخرش هم یه اذن فرجه حتی تلقا امامه سر کن تا امام رو بینید چهار حالت در این دوباره سرسونه از دیگه از علمه امامه شاید مسلم که خب شاید مرجیح جهتی اول باشه چرا مرجیح جهتی اینجا سوم شده اصلا چرا؟ خب ممکن از دو سرواست باشه که این متابقه با سنیا باشه بگیم این تغییره دنبال شهرت و موافقت کتاب و از همون اول تغییر را برد بکنیم. چطور شده در این رواست مبالا که از اول مراجع صدوری آمده بعد مراجع مضمونی آمده بعد مراجع جهتی آمده بعدم که توقف با ارتیاب و این ترسی باقید از رواست هم نمیستاته حالا میگم که این بحثیه یک ای که در اینجا با در نظر گرفت یک نکته کاملاً فنی و ذریفه اینه که اصولا بنای اصولین ما بر اینه و درست هم هست اگر قیدی در سؤال راوی بیاد این تغییر نمیزنه اما اگر قید در جواب امام یا تغییر میزنه. اینجا این ترتیب تو سؤال راوی آمده یعنی راوی داره فهمتی میکنه تقرد چون راوی فرض کرده این معناش تغییر نیست یعنی این معناش نیست که شما در مراجه اگر رواد در مراجه ها باشه که نیست دارد بسن تو مراجه ها اگر رواد در مراجه ها باشه بگیم یه ترتیبی داره اول مراجه صدوری بعد مراجه مضبونی بعد مراجه جهتی چون این ترتیب تو سؤال راوی آمده نه اینکه امام از اول فرمود باشه اگر دو تا حدیث متعارضی اول این کارو بکن بعد این کار رو بکن بعد این کار رو بکن خوب نشد کردید اگر قید در سوال راوی بیاد تغییری نمیزنه اگر قید در کلام امام بیاد تغییری می‌زنه چون قید در سوال راوی منزله طرز موضوعه مثل مفهوم لغت میمونه اصلا یه کسی آمد بزنه من دو ساعت بعد از امام فرمزم مثلا به او نده این معناش این نیست که هر هرکسی دو ساعت بعد از رونات قضا نده این در سوال راوی بود که دو ساعت بعد از ظهر بود افیقی قیل در سوال راوی بیا یعنی در این فرض اما این که اگه یکیزی دو ساعت و نیم آمد این, این نیست نازره به این خصوصیات نیست هست فنابراین حالا با این و عجیب اینه که باز امرت نهن از کن اینجا مختلفه بنابرای نسخ مشروطتش شرد تقصیبش اینجا در وقت تاروز فرض می خیلی عجیبه نشون می که که اونها نهنده کاملا به تاروز روایات احل بی در کوفه اشراف داشته این خیلی مهمه ها یعنی فرض میکنه یک مطلبی دو تا باید داره هر دو هم مشروعه هر دو هم با زواهر کتاب می سازه فرض میکنه، خیلی عجیبه حالا ما الان در خود داره باید ما الان این داریم یعنی هون سوالی کماره بندره حالا فرسن صد و چه نه که ما کرده صد الان ما داریم مثلا در ما که اگر مرزن گره و قبل از اینکه به احساس دفاقی بشه که اوتو آیا مه میشه مثل طلا یا مه کامله نه اونی که در قرآن هست ازا طلاقه دخول اون قبلت دخول که طلاق بشه اما اگر اول سوشی خب این دروغان میصنن از روزانه تصادف روزگار این که در اینجا ما سه چهار تا روایت داریم که نرش میشه سه چهار تا هم داریم که نرش نمیشه دوستا یعنی یعنی واقعا یکی از عجایب کاره یعنی همینش که ما رو در حضور یعنی خوب خبر دهم دو کلا روايات اهلبه هر دو مشهور هر دو از یک جهت مطابقت کتاب ده واقعا خیلی عجیبه الان ما فیده چون کنیم چرا؟ چون مثلا ممکن استی که بگه از آیه کتاب ما اینجور میفهمیم اصلا خود عقد به اینکه که در کتاب کنیم خمد از دخول نصف خود عقد نصف مهد, نصف مهد میاره. و چون روایت هم داریم و خدا آیه هم از دخول اگر باشه تمام مهد پس دخول تمام مهد میاره ولو شبه باشه اصلا شبه عقد به خودش نصف مهد میاره پس اگر ایشون قبل از اینکه که بشه فوق کرد این بنابرای یک فهم از آیه یک فهم از دیگرد آیه که نه این که آیه موارده اوفو بالعقود محتضای اوفو بالعقود تمام مهرباز بده این که بسته تمام مهرباز اگر آمد درباب طلاق از دخول نستمه این تعبوده از این تعبود تعدیمه میکنه این تعبوده و الله مخصده قاعده هر زنی که که من زوجیه هم تبول در مقابل این مبلغ ظاهرش اینه به گفتن این کلام هم زوجیه ثابت میشه هم تا آمد ظاهرش این که قرارت معاملات به خاطر طلاق دلیل آمد که اینجا تأبوده نصف میشه خب در مورد که نه آمد برای به قاعده آمد به قاعده افرود یعنی واقعا یکی از اجایب اینه که این روایت هم شهرت هم یکیش با یک ظاهر آلی بی کنه یک آیه یعنی <تصفيق> درست مشکلی بوده که عمر ابن نهنزله در قرن دوبان در و لذا کردیم روایت نشون میده که عمر ابن نهنزله فقین بزرگ بوده مرد ملاییه این اینجور نمیشه سنجی سوالات بیو بوده مطرح بکنه بعدم امام جهت تغییر رو مفرح میکنه حتی در تغییر هم کاملا مسلط ایشون یه تقییه شما از روایات اهل سنته یا از حکومتی که سنیا دارن با کدوم یکی چون میدونه بعضی چیزا پیش اونها مشهور هست اما حکومت بهش عمل نمیکنه اما می کنن تقییه من از حکومت هم. از روایت این به نظر ما میاد که روایت مبارکه و شبه از درست تارو درسی میکنه این ناظر هست اصولاً به باب حجیت و اغلایی خبر و در پرزه هایی که ایشون میگه به استثنای فرزه افیر امام یک قواهد و اغلایی رو ذکر میکنم این میداشتم شاید تعبودی باشه این تعبودی که نیاز به شرق ایشون داره به اینکه که کدوم خبر وجد هست کدوم خبر وجد نیست اونی که ما میفهمیم اینه اصلا در این روحات مبارکه صحبت تعارض نیست ما در جلسات و گذاشته عرض کردیم اگر حجیت تعبودی خبر قبول بکنیم تا آرز فرض میشیم چون حجیت تعبودی این است که یک معیار شاره میده طبق اون معیار هر خبری که واجد معیار بود حجته ممکن دو تا خبر واجد با معیار باشن مثلا وصافت راگی هر دو خبر سره بشن. این میشه اسمش حجیت تعبودی و تا مطرح میشه و اگر ترجیحی هم بخواد بیا ترجیح ترجیح تعبودی است یا قبلایی اونا ما چون بیشتر دنبال های تعبدی بودن تعبدی گرفتن تا من و علماای اما اگر ما حجیت عقلایی رو قبول کنیم تاارض خبر هم مسئله الهی تاارض قبل از حجیته. یعنی حجیت یعنی بنابر حجیت عقلایی یک خبر با شرایط خاصی حجته میگه بحث تمیزه حجج الهی چون تمیزه حجج الهی با اون مدننا تبدن میخوره با این ممنان میخوره با اون ممنان میکنه. پس به نظر ما میاد که خبر ناظر باشه به یک مسئله اوقلایی و هیچ رفتی به حجیت تبدی و ترجیح و تا آرز و این حرفا نداشته باشه چون بعد م مستثال متعرضه نکته شدن توضیح اون نکته سااد هم اصل کردیم حالال بعد در زیر اون مسئله ار میکنه این را چه به قسم اول که حجیت شهرر داشت قسم دوم در کلمات استاد شهرت عملی این ایشون معنای مثلا عمل معنای استناد شهرت به خبر در مقام افشاء این اسم شهرت عملی است و عرض کردیم که مشهور بین علما توضیحیش هم دادیم مرحوم استاد مطلبی فرمودون توضیحش رو عرض کردیم در این کتاب استاد در صفحه 234 و 35 به این مغنا رو توضیح دادن خوندیم در بحث حسابه این قسم دوم از شهر و از کردیم این موردش عبارت از این است که قدمای اصحابی این تا زمان شیخ توسی شیخ موفی شیخ صدق دیگران به خبر ضعیفی در مقام فتوا استناد کردند و توضیحاتش گذشت، به مجرد اینکه خبر ضعیفی موجود بوده مثلا از اون در کتاب دانیمال اسلام خبری بوده و کتاب دائم در افتر علمای ما نبوده ما قرن نمازه هم چیزه مثلا یازده هم کتاب دائمه پیدا کردیم این رو هم کافی نمیدانه این رو اسمش رویه شهرت تطابقی شهرت تطابقی در مقابل شهرت به اصطلاح استنادی اگر قدما بیگمتلی رو عمل کردن و فتوا دادن این خودش حجیت میاره اون خبر زهی حجت میشه از کردم این مطلب رو مطرح کردن ایده از بزرگان و برش استدلال کردن، آیه خویه کردن کردم، از که این سه تا معنا تقریبا وجود داره. یکی اینکه شهرت جابر و کاسر هر دو یکی اینکه جابر باشه، این یعنی خبر ضعیف اوججت میکنه اما کاسر نیست، یکی هم عکس این. یکی هم معنای خویه چی شد؟ نمی‌دونم، می‌شود 4 تا معنا داریم جا. حالا اگه معنام یکی حساب بشه ما اکسیما برادرش فهم میکنه بعض جا و بعض جا نیست نه این ولیش اطلاق داره معمولش اطلاق در بین نداره و توضیحاتش رو سابقا عرض کردیم ان شاء بعد بیشتر خواهزا از عرض کردیم قدماهای اشخاص ماوی مبانی خاصی به عده از روایات فتو دادند در قرن هشتون که علامه حلی این معیارها رو برد و این حدیث زین پس این حدیث سیئه است بعد از علامه اول ما اینو به یک نکتهی برخورد که مشکل درست کرد. بیان ادی از روایت صورت تقسیم علامه که در قرن هشتم بوده اینا ضعیفه، اما در قرن سوم و عمل شده. قرن چهارم بیش عمل شد. روایت به تعبیر علامه صحیحه، اما در قرن سوم و چهارم بیش عمل نشده. این همون دلبر درست کرد. توضیح مطلب رو از کردیم یا وشلوش این مطلب مطرح شد مثل شیعه قبل شیعه صنی؟ اینو این دیگه قبول نکردن مثل تا همه داره بعد همه های خویی این محرح کردن که اصطلاحات الله خوبه صحیح خوبه محسط خوبه حسن خوبه لکن باز هم عمل قدم رو باید در نظر بگیریم این رو ما توضیحاتش رو کردیم خوندیم نکته فنیش به نظر ما این واقعه خارجی در فقه شیعت ارز کردیم این در فقه احسنت هنفی نداره. در فقه مثلا زیدیه وجود ندارد در فقه اسماییلی ها وجود ندارد اونجا اسمایلی فقه این آدم باید دائم عمل بکنید چیزی که هم چیز باید دائم ندارد دقیق میکنید در فقه مثلا خوارج این وجود ندارد الان اخیران مدرسی یک کتاب باید نام دارد شاب در فقه اون وجود موجود در فقه شیعه است. و ارز کردیم این مطلب اینقدر قوی بوده که هر تانس مولا محمد امین استرابادی که به شدت اصرار داره اجماع حجت نیست میگه اگر فتوه بین و قدما بود اون حجت نیست اجماع رو قبول میکنه حجت نیست این رو قبول راست هم هست و نکات رو زه کردیم میگه تکرار نمیخواد ببین این قسمت دومه پس این بحث حجیت شهرت توی هم که ذیل بحث حجیت خبر واحد بیان بعد میتونم قسم سوم شهرت فتوایی. که این محل کلام اینجای ماینه ما مراد از شهرت فتوایی این است که یک پتواه بین علمان مشهور بشه و روایت هم نداشته باشه دلیل نداشته باشه آمدن گفتن نفس خود این شهرت هجته این بحث مناسبه اینجاست یعنی زن نحاصل از شهرت فتوایی، این با اینکه که اصل اولی عدم آجز زنه این زن هست هجته اگر از را شهرت پتواهی باشه من استاد هم چند وجه برای یعنی البته این كلام عرض کردم زمان علامه با شروع شد تو گذشت سابقا و اصحاب ما وجوهی برای این شوره تفویذ ذکر کردم استاد خوبیشونه اینا رو جمعوجور میکنن برای فهرست و لیست سازی خیلی خوبه اولش مقوله عمر بن هنزله وجه استدلال به محبولی عمر بن حمزله البته ایشون خیلی توضیح نهدن یک همون نقطه بود که ما کردیم که خود به مشتره بین اصحابه فه این نلمجمه علی تمام تعبودیه این نقطه اول این ایشون توضیح نهد دو امام بلو بحثشون در خبره لیکن چون فهمدم فه این نلمجمه علی تعلیلی که آوردن اوسع از دائره خبره و این که اصولا امر مشهور لاره بفی. امام می اگه دو تا خبر بود یکی حجت که مشهور اون شازنازه رو قبول نکن تر بودن. برمان به خاطر اینکه مشهور لاره بفی. میان تعلیق الخوف هلوست مشروعون بالالیه. معلوم میشه نقطه شهرته خود قطع بکنه حالا شهرت میخواد تو ربایت باشه؟ شهرت میخواد تو باشه. فإن و این هم حجیت تعبدی هم هست لاره بفی هم لاره بفی حقیقی یعنی فی نقصه لاره بفی پس بنابراین امام نه رو نه خبر مشهور لاره بفی بلکن فه ان المجمع علی لاره بفی این مجمع علی هم چون بعد از خوضمش تره مراد شهرتی فه این المشهور از برای مرحوم اصطب مقدمه اول و مقروقان انگلتن فه این المشهوره هجتون تعبده لا رزیدی تابده هم کلام در مورد خبر بود تعلیل در مطلق مشهوره پس میگیم هر مشهوری حجته ولو فتحه باشه این کیفیت استدلال به این از بتون این استدلال خیلی بعد ها ذهب شد اصلا این خود این مسئله از بعد از علامه از و نه هشتون به بعده استدلال مثلا از قرآن ده همیازده هم شد باشه دقیقا نمیه اول که دیگه خیلی بعد تره. این استدال بعد مطلب شده این یک مطلب یک استدال بعد ایشون اشکال کردن اولا مراد اولا رو باید ضعیفه ثانیه ارز کردید مراد از مجمعه مختوب استدال یعنی اون رواتی قطعا ساده شده بله و رافی به شهرت فتوایی نذره و مراد خبره سال سن ایشون اشکال کردن که اصولا اگر تعلیل بیا تعلیل در همون دائره است مثلا اگر بفرماید که سوال می‌کنیم این مثال بزنن مثلا اینکه دادن حالا سوال کنن که انار رو قرمز بهتره یا صابه کسی بگه نه صابه بهتره این معناش اینه که هر جنسی که مال صابه بهتره خصوص انار خب ولی سوال در انار بوده معناش این نیست که هر جنسی که اصلاح خوشه بکرد اما مثل شیخ هم مثال داره. ولی ازایشون میگه و که در لغیل ایر رومانه ته اینطوری البته این ظاهرن به نظر این اشتباه چاپ کردن اون در کتابشه رومانه به نظر در رسالشه رومانه نه انا رومانه یعنی به اصطلاح این چیه که در جنگ تا میبرن نارنجه این چاپ کردن رومانه ته اشتباه چاپ شده رمانه در اصطلاح عربی چه معنای نارنجک نارنجک فرض کرده رمانه شده به نظر میاد بچا کرده اساسا وقتی رمانه و نارنجک و جنگینه رو ببینن علایو حال بعدا میوشه که اول اکثر در رمانه این میگه اگه بوده میگه از انار بهتر میگونه که مثلا فرض کن میگه دانسه سفیدش خوبه این معراشی نیست که هر چیزی مثلا هندوانه هم سفیدش خوبه مثلا نارنج این وراد این نیست که اگر انسان گوه چیزی مثلا سفیدش خوبه به نور سوال مراد مطلق باشه درست این مطلقی چونم درسته مطلق هم درسته از این راجع به جواب ایشان وجه دوم وجه قوت زنه یعنی زنی که از شهرت اقواز از زنه از خبر واحد چون این بیشتر نرا شده پس این قطعا بعد جواب نارخویی مهم نیست و این که وجه حجز خبر زن باشه این نیست وجه حجز خبر و ساقت راویست و جواب میدن که خب واضحه اصولا این که بگیم این زن اقواز از اون زن این مبنیس رو که این که غالبه انصدا در اصولا یعنی ایشون توضیح هم همینطور یعنی ما باید بگیم حجیت حجج از باب زنه چون از باب زن شد اون وقت مثلا میگیم زنه در باب شهرت اقواز این واضحه بعد وجه سوم رو عموم تعلیل در آیه نبه هنتوسی بو قومن به جهالته فتش به علی ما فعلتم نادمین بعد ایشون میفرمایند که توضیح میدن که تعلیل گاهی مخصصه گاهی عاممه گاهی توضئن الا شود خصصه و من جهه تزیه مثلا اگه گفت که لا تاکل رمان در نه و این از یک جهت مخصصه یعنی رمان شیرین رو خارج میکنه از یک جهت دیگه هم گاهی عاممه یعنی هر حامزی مثال دیگه بزنه نه هر حامزی غیر از رومان و الا ابلیمو مثلا اون هم برای تو خوب نیست مثلا یا لیمو ترش مثلا پس علت تعبیرش اینطوره به تعبیر ایشون و از معنای آیه‌ی مبارکی ماشه و تبیان و و این باشه وجوب التبیین فی کل ما و بدی صفاحته برابر این که لفظ جهالت در آیه مبارکی معنی سفاهته این گفته شده که ما در جهالت صفاحت اینه عملهای جاهلانه صفیح هستند و این انر عمله به شغلهای کن و صفاحت هم فلا یجب و فی هست و مقتضا عموم تعلیم این استدلال سوم. بعد ایشون میتونم با من و سغرا بر کبرا از کردم استدلال ها بعد پیدا شد اصولا از وقتی که حجید شهره در بارات اصحاب ما آمد این نحوه استدلال بعد بشه اضافه شد ایشون میتونید حالت در آیه شریفه از این مطلب درسته دقیقه بفرمین اصل این مطلب چون کلمه جه در لغت حرب یک نکت سعه داره همین هم کتاب کافی شریف دقت بکنی در کتاب کافی کتاب اولش در اصول باقل عقل و جهل کتاب دومش بابول علم رو از جهره پس جهره در مقابل عقل حلم جهره در مقابل علمه وقتی میگن فلانی جاهله این عاقل نیست کار اغلایی نمی وقتی میگن جاهره اینه آله می کنه باشه علم نداره آگاهی نداره اینه که مرحوم های خویی اینجا بحث کردن که مراد از جهاله انتصیب و قومن به جهالته آیا مراد سفاهت؟ یا مراد جهر به بالندل علمه راستان هست این هر دو معنا در زیر آیه احتمال داده شده خیلی بعضی روایی شد شما سمید این جهالت در لغت محط عرب فارسی ما اینطوره. جهالت با سفاهت بیشتر میسازه نه با جهر نادانی جهالش هم واضحه در اصطلاحات عربی هر دو به کار برده شده یه روایتی هست مادر عبدالسان در بشیر ایما رجل ارتکه به امرن به جهالتن فلا شهده اونجا جهاله داره جهاله در اونجا من جهله نمراس صفاهت ایما رجل ارتکه و امرن به جهالتن فلا, فلا شهده اما چه افتیمالی که صفاهتن باشه منصول صدرالیه و روایت بشت بزیش هست اما ظاهرش جهله ایشو میتونه که آیا صفاهته یا جهله اگر سفاهت باشه عمل به شورا هم سفاحته. چون مجرد این که سی تا 4 تا 50 تا 60 تا فقیه یک فتوا رو بدن خب این که عمل اوغلایی نیست چراشون در شریعت مقدسی آباد برگرده به کتاب یا سنت و این هم که نقل نیست فتوا است در مطلب نبوده خب ممکنه بگن که اینها همه خطاوی شخصی است ظن فرس این تا دار پنجات تا که فی نفس همش مفید زنه این مفید علم نمیشه از صفاحت خارجش نمی کنیم بلی بقید ایشون که از الامر از ما یعنی علی اقاب یکون صفاحتم و حکم الامر این شما مهمن بیاری و شهرت به تنایی مهمن نیست و اگر مراد جهر باشه که امر اوزه این خلاصه اشتال ایشان که چه مراد سفاحت باشه چه مراد جهانت باشه عمله به شوهر در محقوق کلام ما صدفه و اما من من الکبرا فلعنه تعلیل و اینکانه یختز تعمیم درسته الا نه لا یختزی نخی یا حقی غیر موردی به مالا توجتی الاله ازلا مفهوم الاله فر انحصار الاله درست تعلیل تعمیم میده اما انحصار رو اثبات نمیکنه. و لای استفاده من التحلیل و لا رفت به عموم تحلیل مثلا فعندت تعدیه لا غیر الخمر من المسکرات وله حک به حرمت حال عموم تحریم لا اینجا به الحک به حلیت کل لما لیت مسکر اگر بخلا تشغیر خم فعنده هم مسکر خم بله خمر حرامه انواع شراب ها درست میشه اونا مسکر اونان حرامه اما اگر هرچین مسکر نبود حلاله این که در نمیاسو ممکنه مسکر نباشه مث مسکر نیست حرام هم برش اون خود داریم این انحصار نداریم بلقد یک حرام هم نه عدم کنی مسکر تعلیل توسعه میده اما انحصار رو اصفاد نمیکنه کمون کما اضاکان مثلا نجست باش اوکان ماله غیر مثلا وله حکم وجوب تبیان فی کل ما کانالعمل وی صفاحت هم لا ی علا عدم وجوب تیم مقته این معناش این نیست که اگر صفاحت نبود نمیخواد تباییون جدی دیگه بخواد این منافض نده این خلاصه سه اشکالی که سه استدلالی که مرحوم استاد نهار کردن و سه اشکال ما انز کردیم چون وقت همون شده فقط یک کلمه انز کردیم راه صحی در تفکرات ما این راهی نیست که این راه های نیست که سه راه صحیح اینه که ما اول علت پیدا بکنیم چرا این تفکر در چیه آمد که شو ما دنبال این بگرده از کردی ما گشتی مراجعه کردیم مشکل خاصی پیدا نکرد داریم تاریخ هم از مسئله سید از واضح بوده ارز کردیم مروم شیف در کتاب محسوس ادهی از فروع تفریعی رو آورده که فوقای ما نمیشتن این فروع تفریعی در روایات نیست تفریعی دیگه در روایات نبوده بعد از شیخ طوسی حالا بعد از شیخ توسی یا با ایمانی که داشتن این فرو آمده این از قرن 5 تا قرن 8 اینو علمای بعدی هم قبول کردن هیچ تلاور به سببش قبول نکرد اولی ماون را به فراست تا 200 سال معلله شیخ بود علامه حموانی این مشقوره تاست مشقوره از آنجایی که طوسی تا او داور شده راست هم از درسان اینجاش هم اینجا درست هم. علاقه یک مبنایی گذاشت این که اگر پتواهی مشهور بود و معارض نداشت این شهر اون حجر این راست نیست این یکی قبول نطور بعدی آمادن گفتن نه دیگه گفتن نه شهرت مطلقا است. این چیزی که بسر از اون پس این تاریخ داره چیزی که تاریخ داره کمید آره پس هبه هم زارد اجر. ما وقتی تاریخش رو میدونیم خب از ما سوال میکنه یک ختمه بین بقای شیعه تفریعا در روایت نبوده از قرن پنجم آمده هنچ سبقه هم بعدش علمان باش موقعات کرده چه حساسه به ما و الله میشه احتیاج به استدلال نداره احتیاج بین که سه تا دلیل و چه تا دلیل دلیل نمیخواد دیگه اصلا وقتی تصور موضوع رو کرد خود به خود به حکم میبسه خیلی دیگه نیازه الزم این استدلال ها بعد کرد اونی که در کلام علامه آمده اینه بعضی جاها در مختلف هم داره میگه لنا انهو مشهورون ولا معارضله وانهو مشهور بلا از یعنی می درست درست واضحه میدونن سرزهان شرق توسیه دیگه تو رواهات هم نیست قبل شرق توسیه نیست در این دیگه این فتاوا توی نهایی شرق توسیه هم نیست تو مقنه شرق مفید هم نیست خب نیست دیگه برای مراجعه نیست دیگه موشنی شد و رضا هم کردیم این نهرهی مبنا به نهر سنت هم نیست. نقطه هم داشته باشه. احتیاج به وجود نیست. اصلا تصور بکنید شوازه پتایی چیه. خودش تصورش است کابیه. مرحوم شیخ و بلکه علم تو مقام خارجم عرض کردیم انصافا ادهی از تفریه آزاری که شیخ سوسی گفته خود ما هم موافق نیستیم این خوب تفریه نداریم. مسئله رو از اهل سنت میگه تطریق قواضشی ادازه تطریقش نظر ما دقیق نیست پس این دیگه ارزشی نداره که بحث بکنیم فلسفه خودش ارزشی نداره احتیاج به عذل نداره ما فتوای... چون فقه شیعه از اول فقه منسوس بوده فقه تطریقی رو مثل شیخ مفید اینا مثلا شیخ طوسی هم تو نهایه مطرح نکرد فقه تطریقی در میان ما از زمان شیخ در خلاف زین شیخ طوسی در خلاف و الاکلام محسوب امه انصافا در این دو کتابه تو مقصود می‌شدن ادی زیادی از این تفاوی شیخ مرده قبول شده لازم نیست تقلید باشه اشتباه نکنید علمای بعدی رو قواعد قبولش شده نه اینکه تقلید باشه شما هم اگر باشیم همین مشهورم هم. مشهور چی یعنی <تص> 250 سالی این مطلب داره نه نزدیک 300 سالی این مطلب داره نه نمی‌شه قبول خوب مشهور مشهور این که که دیروز اما این شهرت منشعه بشه که حجتو هم؟ ده این آبین الله چرا؟ انگام هم در اول گفت حجتون اگر معارض نداره حجتو اونم چرا؟ نه معل معارض نه بلا معارض نکته نم ببرم اونچه فتوه های عزه اصفقه ها بوده روی قبائد تفریه کردن خیلی خبسته ها که گفت هم رجال, هم رجال. ما میان نگاه میکنیم اون قوائد قبول میتونیم یا نیمی کنیم پس بنابراین کمی وقت گذاری شفش دقیقه اوز میخوام این مطلب رو اگر مردم استاد و دیگران ریشه های تاریخیش رو پیدا میکردن اصلا نیاز به این نحر استدلال همون من از یک بره کتمی یه توضیحی در زیل این استدلال ها ترده عرض میکنم بعد وارد به خبر واحد انشاءالله سالایی شید